حکایت مهمان پیری شدم در دیار بکر که مال فراوان داشت و فرزند خوب روی. شبیه حکایت کرد که مرا به عمر خیش بجز این فرزند نبوده است. درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستند آنجا روند. شبهای دراز در پای آن درخت، بر حق بنادیددم تا مرا این فرزند بخشیده است شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدر بمردی خااج شادی کنان که پسرم عاقل است و پسر تن که پدرم فرتو سالها بر تو بگذرد که گزار نکنی سوی تربت پدرت. تو به جای پدر چه کردی خیر تا همان چشم داری از پسرت.